رادیو قبرس تقدیم می کنند. درمان شپن هاور با صدای نوشین ستاری من برای عوام ننوشتم، آثارم را برای اندیشمندانی بر جای گذاشتم که در طول تاریخ همچون استثناهای نادری سر برخواهند آورد، آنان نیز احساسی مانند من خواهند داشت، یا همچون کشتیبان یک کشتی شکسته در جزیره ای متروک، ردپای رفیق رنجوری که پیش از آنها بر جزیره گام نهاده، بیش از همه توتیها و میمونهایی که بر شاخصار درختانند مایه تسلایشان خواهد بود، فصل 29 جولیوس جلسه بعدی را با این جمله آغاز کرد. دلم میخواد کار را از همون جایی ادامه بدم که جلسه پیش متوقف کردیم. خوشکی و رسمی و انگار که از روی متن از پیش آماده شده ای میخاند به تندی ادامه داد. مثل بیشتر روان درمانگرانی که میشناسم چیزی را از دوستان سمیمین پنهان نمی کنم. برای ماسون نیست رازی رو در زندگیم پیدا کنم و مثل بعضی از شماها که اخیراً این کار رو کردید خیلی راحت و بیقلقش و بیرو دروسی با تون درمیون بذارم. ولی اتفاقی هست که فقط یک بار در زندگیم ازش حرف زدم و اونم سالها پیش برای یه دوست صمیمی بوده. پم که کنار جولیوس نشسته بود حرفش را قطع کرد. دستش رو بر بازوی او گذاشت و گفت صبر کن سب کن جولیوس. تو مجبور نیستی این کار بکنی تو به زور فیلیپ توی این بازی کشیده شدی وقتی که تونی انگیزه های مزخرف اونو رد کرد حتی خود فیلیپ هم از این درخواستش معذرت خواست من به نوبه خودم دلم نمیخواد تو رو توی این مخمسه بذارم بقیه هم موافق بودند و گفتند جولیوس همیشه احساساتش را با گروه به اشتراک میگذارد و آن قرارداد داده من تو فیلیپ فقط یک نقشه بوده است گیل افزود یه چیزای این وسط داره لوس میشه. همه ما برای گرفتن کمک اینجاییم. زندگی من خیلی آشفته است. خودتون که هفته پیش دیدید. ولی جولیوس تا جایی که من میدونم تو یکی مشکلی با صمیمیت نداری. پس برای چی باید همچین کاری رو بکنی؟ ربکا با شیوه مختصر و مفید و دقیق خودش گفت: هفته پیش گفتی من رازی رو بر زبون آوردم تا هدیه ای به فیلیپ بدم. این تا حدودی درست بود ولی همه حقیقت نبود. حالا اعتراف میکنم که در عین حال میخواستم اون را از خشم پم حفظ کنم. ولی چرا اینو میگم؟ هدفم چیه؟ میخوام بگم اعتراف درباره کاری که در لاس وگاس کردم درمون مؤثری برام بود. با بیرون ریختنش راحت شدم. ولی تو اینجایی که به من کمک کنی و خود افشاگریت ذره به من کمک نمیکنه. جولیوس اون نشینی کرد. چنین اتفاق نظر قدرتمندی برای این گروه عجیب بود. ولی اندیشید که میداند چه اتفاقی دارد میافتد. حس می کنم نگرانی های زیادی درباره بیماری وجود داره. خیلی مراقبم هستید. نمیخوایم به هم فشار بیارید. درست میگم؟ پامگوف گفت شاید. ولی از نگاه من مسئله دیگه هم مطرحه. چیزی در درون من هست که نمیخواد تو بخش تاریکی از گذشتت رو آشکار کنی؟ جولیوس متوجه شد بقیه هم نشانه هایی از موافقت بروز روز می دهند و روبه جمع گفت عجب تناقضی از وقتی وارد این رشته شدم این شکایت را از زبون بیمارا شنیدم که درمانگران سرد و نکستن و خیلی کم پیش میاد که از زندگی شخصیشون با اونا حرف بزنن بفرمایید حالا که من در آستانه انجام این کارم یه جبهه متحد در برابرم هست که میگه نمیخوایم بشنویم. این کارو نکن. اینجا چه خبره؟ جولیوس پرسید. دلتون میخواد منو بی عیب و نقص ببینی داره؟ کسی پاسخ نداد. انگار گیر کردیم. پس من امروز سرسختی نشون میدم و کارم رو ادامه میدم تا ببینم چی پیش میاد. داستان من به ده سال پیش و زمان فوت همسرم برمیگرده. من با میریام یار دبستانیم زمانی ازدواج کرده بودم که دانشجوی پزشکی بودم و ده سال پیش اون رو توی یه تصادف در مکزیکو از دست دادم. من داغون شده بودم. اگه بخوام راستشو بگم، مطمئن نیستم هیچ وقت از وحشت اون حادث خلاص شده باشم. ولی برای خودم هم خیلی عجیب بود. سوگواریم شکل غریبی به خودش گرفت. موج عظیمی از افزایش نیروی جنسی رو تجربه کردم. اون موقع نمیدونستم افزایش میل جنسی یکی از پاسخهای رایج جادما در رویارویی با مرگه. بعد از اون افراد سوگوار زیادی رو دیدم که از انرژی جنسی می شدن. با مردای زیادی حرف زدم که می هین سکته قلبی شدید و موقعی که با آمبولانس به اورژانس برده می شدن، پرستار زن همراه رو دستمالی کرده بودن. در دوره سوگواری، مفکار جنسی زهنم رو تسخیر کرد. نیازم خیلی زیاد شده بود و وقتی دوستامون چه زنان متحل و چه غیر متحل می اندارین بدن، از موقعیت استفاده کردم و با چندشون از جمله یکی از بستگان میریام رابطه جنسی برقرار کردم. گروه خاموش و حرکت بود. همه معذب بودند و از نگاه به هم پرهیز می کردند. بعضی به جیرجیر جیرجیرکی جیر که بر افرای قرمز ژاپنی بیرون پنجره نشسته بود گوش سپرده بودند. در طول این سالهای سرپرستی گروههای درمانی، جولیوس گهگاه آرزو کرده بود کاش کمک درمانگری در گروه داشت. این یکی از همان موقعیت‌ها بود. سرانجام تونی به زور چند کلمه گفت: چه برای سر اون دوستی ها اومد؟ کنار کشیدند و کم کم ناپدید شدند. بعضی از اون زنها رو اتفاقی در طول این چند سال دیدم ولی هیچ کدومشون ای به این موضوع نکردن. احساس خجالت و همینطور شرمندگی زیادی در این کار بود. پام گفت متاسفم جولیوس و برای همسرت هم متاسفم. اصلا نمیدونستم و همینطور برای اون روابط بانی گفت: من نمیدونم چی بهت بگم جولیوس. واقعاً اسباب خجالت و ناراحتیه. جولیوس در حالی که سنگینی کار تاقت فرسای درمانگر خیش بودن در گروه را بر دوش حس می کرد گفت: از این خجالت و ناراحتی بیشتر بگو بونی. خب این کاملا تازه است. اولین باره که خودت رو اینجوری در معرض گروه قرار می‌دی. ادامه بده چه حسی داری؟ خیلی هزم شاید به این خاطر که این وضع خیلی گنگ و مبهمه. اگه یکی از ما با دست اشارهی به گروه کرد. مسئله ناراحت کننده ای رو به گروه بیاریم میدونیم باید چیکار کنیم. منظورم اینه که فوری دست به کار میشیم. حتی اگه ندونیم دقیقا باید چیکار کنیم. ولی درباره تو نمیدونم. تونی خمیده به جلو و با چشمانی تنگ شده در زیر ابروان پر پشتش گفت درسته، چیزی که روشن نیست اینه که چرا این رو داری به ما میگی؟ بذار یه چیزی ازت بپرسم که از خودت یاد گرفتم در واقع همین هفته پیش بود چرا حالا؟ آیا به این دلیله که قراری با فیلیپ گذاشتی؟ بیشتر به این قرار نگفتن یعنی این قرار به نظرشون معنی اومد. یا به این دلیله که به دلیل احساساتی که از این اتفاق در تو باقی مونده از ما کمک میخوای. منظورم اینه که دلایلت برای درمیون گذاشتن این ماجرا با ما روشن نیست. اگه واکنش شخصی من رو میخوای مشکلی با کاری که تو کردی ندارم. رو راست بگم همون حسی رو دارم که درباره استوارت و گیل و ربکا داشتم. شخصا در کاری که کردی چیز مهمی بینم میتونم خودم را هم در حال چنین کاری تصور کنم تنهایی شاید اونا هم دلشون میخواسته منظورم اینه که ما داریم از این خانوما جوری حرف میزنیم که انگار مورد سو استفاده قرار گرفتن من اعصابم خورد میشه واقعا خورد میشه از این تصویر که مردا یه ذره رابطه رو گدایی میکنن و زنای انگار بر تخت پادشاهی نشستن و تصمیم میگیرند که آیا این لطف رو بکنن یا نه. تونی با صدایی سر برگرداند و دید پم در حالی که صورتش را با دستانش پوشانده به خودش سیلی میزند و متوجه شد ریبکا هم دستانش را بر سرش گذاشته. خیلی خوب خیلی خوب این کارتهای آخر رو میندازم و فقط به همون کارتهایی میچسبم که میگن چرا حالا؟ سوال خوبیه تونی. ممنونم که راه هم انداختی. چند دقیقه پیش داشتم آرزو میکردم که کاش کمک درمانگر اینجا بود و کمکم میکرد. و بعد تو از راه رسیدی و کاری که لازم بود انجام دادی کارت خوبه روان درمانی شغل خوبی برات میشه خب بذار ببینم چرا حالا من بارها و بارها این سوال رو از دیگران کردم ولی شاید این اولین باری باشه که خودم باهاش روبرو شدم اول از همه فکر میکنم کاملا حق با توه وقتی میگی فقط به دلیل قرارم با فیلیپ نبوده گرچه نمیتونم اون قرار رو کاملاً بی تأثیر بدونم چون توی هدف اون چیزی از رابطه منتو هست به قول فیلیپ، این ایده بیفایده هم نیست و به فیلیپ لبخند زد ولی در مقابل لبخندی دریافت نکرد جولیوس ادامه داد منظورم اینه که این یکی از موزلات رابطه درمانی موسقه که رابطه متقابل در اون جایی نداره این از اون معامه های سخته پس اشاره به این موزل یکی از دلایل موسق من برای پذیرش چالش فیلیپ. جولیوس منتظر واکنش بود حس کرد زیادی طولانی حرف زده است رو کرد به فیلیپ حست درباره چیزایی که تا حالا گفتم چیه فیلیپ که از پرسش جولیوس جا خورده بود سرش را به طرف انجام جنباند بعد از لحظاتی تعنی گفت اینجور به نظر میاد همه اینجا موافقن که من یکی از اونایی هستم که انتخاب کرده چیزایی رو افشا کنه این درست نیست یه نفر در گروه چیزایی درباره رابطش با من افشا کرد و من فقط برای اینکه اون اتفاق رو درستتر توصیف کنم گفتم که دقیقا چه کرده بودم تونی پرسید. میخوام بدونم اینایی که گفتی چه رفتی به حرفهای ما داشت؟ استوارت گفت دقیقا فیلیپ تو از صحت و درستی حرف میزنی اول بگم من از اونایی نیستم که فکر میکنه تو خود افشاگری کردی. ولی میخوام بگم جوابت خیلی بیرابط بود. هیچ ارتباطی با سوال جولیوس درباره احساساتت نداشت. به نظر نمی فیلیپ رنجیده باشد. درسته بسیار خوب. برگردیم به سوال جولیوس. فکر میکنم سوالش گیجم کرد. چون هیچ احساسی نداشتم. در گفته هاش، چیزی نبود که یه پاسخ حیجانی به طلبه. استوارت گفت این جواب دستکم کم بی ربط نیست. جواب قبلیت خیلی پرت بود. پن با خشم به روی رانش کوبید و با لحن تندی به فیلیپ گفت من از این گیجبازی دروغی تو در اینجا خسته شدم. حالا به هم میخوره که دیدم حتی حاضر نیستی اسم منو به زبون بیاری. این اشاره به من به عنوان یه نفر در گروه احانت آمیز و احمقانه است. فیلیپ با گوریز از نگاه خیره پم گفت: منظورت از گیجبازی دروغی اینه که من دارم تظاهر به جهالت میکنم. بانی دستانش را بالا برد و گفت: خدا رو شکر. این اولین باره که شما دوتا به همدیگه محل میذارین و با همدیگه دیگه حرف گیج گیجبازی دروغی در مقایسه با کاری که داری کنی یه تعریف و تمجید به حساب میاد. میگی چیزی در حرفهای جولیوس نبود که پاسخی به طلبه. چطور کسی میتونه هیچ پاسخی برای جولیوس نداشته باشه؟ چشمان پم شوله ور بود. فیلیپ پرسید. مثلا چی؟ روشنه که توی ذهن چیزی هست که من باید احساس میکردم. بیا. خود تو این سوال نسنجیده و بیملاحظت رو در نظر بگیریم و احساس قدردانی و سپاس رو امتحان کنیم یا حس احترام به اون رو برای اینکه سر قولش به تو ایستاد یا مثلا ناراحت شدن برای اونچه در گذشته اثر یا احساس شیفتگی یا حتی همزادپنداری با احساسات سرکش جنسیش یا تحسینش به دلیل اشتیاقی که به رغم سرطانش برای کار با تو و با همه ما نشون میده و اینا فقط برای شروعه پام صدایش رو بالا برد چطور میشه که هیچ احساسی نداشته باشی از فیلیپ رو گرداند و ارتباط میانشان را قطع کرد فیلیپ پاسخی نداد خاموش و خمیده به جلو همچون بودا بر صندلیش نشسته بود و به کف اتاق خیره شده بود در سکوت عمیقی که پس از فوران خشم پم حاکم شده بود، جولیوس مردد بود که بهترین راه ادامه بحث چیست. اغلب بهتر بود صبر کند. یکی از اصول مورد علاقش این بود که وقتی آهن سرد است، ضربه بزنید. چشمانداز درمان با توالی برانگیختن هیجان و به دنبالش یک پارچگی با آن آنجور جور که جولیوس همیشه به آن مینگریست، گریست موجب شد جولیوس به فراوانی ابراز هیجان در این جلسه بیاندیشد. شاید بیش از اندازه بود. وقتش بود که به سوی درک و یک پارچگی پیش بروند. با گزینش مسیری غیر سرراست رو کرد به بانی. خب، نظرت درباره اون خدا رو شکر چیه؟ باز منو خوندی جولیوز؟ چطور این کارو میکنی؟ دقیقا داشتم به اون لحظه فکر میکردم و احساس پشیمونی میکردم. متاسفم که بیموقع بود و یه جور دست انداختن به نظر اومد. شما چنین برداشتی کردین؟ به پم و بعد به فیلیپ نگاه کرد. پم گفت اون لحظه اینجوری فکر نکردم ولی آره الان که بهش فکر میکنم یه جور ریشخند توش میبینم. بانی گفت متاسفم ولی اینجوری حس کردم که اون دیگه جوشانی که اونجا بود بدگویی های تو و فیلیپ از هم دیگه همه اون به دربگو دیوار بشنوه ها با سراحت و گفتگوی رو در روی که بین شما دوتا اتفاق افتاد از بین رفت و تو رو کرد به فیلیپ از حرفم رنجیدی؟ فیلیپ همچنان به زمین خیره بود متاسفم اصلا متوجهشم نشدم همه حواسم به نگاه خیره اون بود تونی گفت، اون؟ فیلیپ رو کرد به پم. نگاه پم. صدایش برای یک لحظه لرزید. نگاه تو پم. تونی گفت، خیلی خوب مرد. حالا داریم با هم را میاییم. گیر پرسید، فیلیپ ترسیده بودی؟ آسون نیست آدم مخاطب این حرفو باشه، مگه نه؟ نه. همه ذهنم مشغول پیدا کردن راهی بود که نزارم نگاه خیرش کلماتش و نظرش برام اهمیت پیدا کنه. منظورم اینه که کلماتت، نظرت پم. گیل گفت، انگار من و تو توی یه چیز مشترکیم. تو هم مثل منی، هر کدوم مشکلات خودمون رو با پم داریم. فیلیپ به گیل نگاه کرد و سری تکان داد. جولیوس اندیشید شاید حرکتی از سر حق شناسیست. وقتی روشن شد که فیلیپ نمیخواهد چیز بیشتری به گروه بگوید جولیوس نگاهش را در گروه گرداند تا دیگران را وارد بحث کند. هرگز هیچ فرصتی را برای توسعه شبکه تعاملی از دست نمیداد. با اعتقاد یک مذهبی باور داشت که هرچه اعضای بیشتری در تعامل شرکت کنند گروه موثرتر خواهد بود. دلش میخواست پم را وارد بحث کند. هنوز فوران خشمش نسبت به فیلیپ در هوا موج میزد. برای این اساس گیل را مخاطب قرار داد و گفت: گیل، تو گفتی مخاطب حرفهای پم بودن آسون نیست. هفته پیش هم پم رو قاضی القذات خطاب کردی. میشه بیشتر توضیح بدی؟ اوه، oh, یکی از چرندیاتم بود، میدونم. مطمئن نیستم و قاضی خوبی هم در این جور موارد نیستم، ولی جولیوس حرفش را برید. دست نگهدار. بذار درست همینجا نگهش داریم. در این لحظه. رو کرد به پام. به چیزی که گیل همین حالا گفت دقت کن. آیا به اون گفتت که نمیخوای یا نمیتونی به اون گوش کنی رفتی داره؟ پام گفت دقیقا. به این میگن جانمایه گیل. ببین گیل. چیزی که همین الان گفتی این بود. به چیزی که میخوام بگم توجه نکنی. مهم نیست. من مهم نیستم. یکی از اون چرندیات همه. نمیخوام کسی رو برنجونم. به من گوش نکنی. نه تنها از خودت سلب صلاحیت میکنی بلکه حرفات بیمزه و چرند هم به نظر میان. کاملا کسل کننده. خدای گیل، وقتی حرفی داری فقط پاشو و حرفتو بزن. جولیوس پرسید. خب گیل، اگه میخواستی حرفتو رو راست راستو بیمقدمه بزنی، چی میگفتی؟ بهش میگفتم، بهت میگفتم پم، تو اون قاضی هستی که اینجا ازش میترسم ترسم. می و منو قضاوت میکنی در حضورت معذبم. نه، در واقع سر و وحشتم. پم گفت، این حرفت رک و راست گیل، حالا دارم میشنوم جولیوس گفت، پم، پس دو تا مرد اینجا هستن فیلیپ و گیل که از تو می ترسن. واکنشی به این قضیه داری؟ آره، یه واکنش بزرگ. این مشکل خودشونه. ربکا گفت، هیچ احتمال میدی که مشکل تو هم باشه. شاید بقیه مردهایی که توی زندگیت بودن هم همین احساس رو داشتن. دربارش فکر میکنم. جولیوس گفت، بازخورد. کسی درباره این جمله آخر نظری داره؟ استوارت گفت، فکر میکنم پم داره یکم چاخان میکنه. بانی گفت، منم موافقم. پم، حس اینه که نمیخوای خیلی جدی دربارهش فکر کنی. آره، کاملاً حق با توه. فکر میکنم هنوز از دست ربکا که گفت میخواست فیلیپ رو از خشم من حفظ کنه دل خورم. جولیوس گفت، محمسه بدیه. اینطور نیست پم؟ همونجور که الان به گیل گفتی، به این جور بازخورده هیچ اهمیتی نمیدی. ولی وقتی دریافتشون میکنیم، میرنجی. حقیقت داره. پس شاید اونقدر که نشون میدم پرتاقت نیستم. و ربکا، حرفت واقعا منو رنجوند. ربکا گفت، متاسفم پم، هیچ قصدی نداشتم. حمایت از فیلیپ با حمله به تو یکی نیست. جولیو ثبت کرد و اندیشید گروه را به کدام سو هدایت کند. گذینه های زیادی وجود داشت. خشم پم و داوری روی میز بود. و مردان گروه یعنی تونی و استوارچ چه؟ آنها کجا بودند؟ شاید هم گروه باید به کار ناتمام بانی و جمعه ریشخندامیزش می پرداخت. جولیو صبر کرد و اندیشید گروه را به کدام سو هدایت کند؟ گزینه های زیادی وجود داشت. خشم پم و داوری هایش روی میز بود. و سایر مردان گروه یعنی تونی و استوارچ چه؟ آنها کجا بودند؟ رقابت میان پم و ربکا هم هنوز روی میز بود. شاید هم گروه باید به کار ناتمام بانی و جمله ریشخندامی زش می پرداخت. یا شاید بهتر بود بر فوران خشم پم نسبت به فیلیپ بیشتر تمرکز کند. میدانست بهترین کار این است که صبور باشد. اشتباه بود گروه را با سرعت بیش از حد به پیش براند. از فقط چند جلسه گروه به سوی آشتی و تشنج زودایی پیش میرفت شاید برای امروز بس بود ولی به سختی میو تخمین زد فیلیپ کم افشاگری کرده بود ولی بعد گروه در مسیر پیش بینی ناپذیر افتاده بود که برای جولیوس هم قافل گیر کننده بود تونی پرسید: «جولیوس، دارم فکر می کنم تو از پاسخی که در برابر افشاگریت گرفتی راضی هستی یا نه خب خیلی پیش نرفتیم. بذار درباره اتفاقی که افتاد فکر کنم. تو احساست رو برام گفتی. پم هم همینطور. و بعد اونو فیلیپ درگیر این قضیه شدن که چطور فیلیپ هیچ حسی درباره افشاگری من نداره. و تونی در حقیقت من جواب سوال چرا حالا رو ندادم. بذار به همین برگردیم. جولیوس افکارش را جمع کرد و کاملا آگاه بود که خود افشاگریش مثل خود افشاگری هر روان درمانگر دیگری دو جور پیامد داشت. اول آنچه خودش از این افشاگری به آن می رسید و دوم الگویی که در این زمینه برای گروه فراهم می‌آورد. میتونم بگم نمی‌خواستم جلو جلوی افشاگری خودم رو بگیرم. منظورم اینه که تقریبا همه اینجا خواستن جلو این کار رو بگیرند. ولی من کله شقی کردم و کاملا مصممم بودم که ادامه بدم. این برای من خیلی غیر و مطمئن نیستم کاملا درکش کرده باشم. ولی نکته مهمی درش هست. تونی، پرسش تو به این معنی بود که آیا در این کار درخواست کمک یا شاید درخواست بخششی هم بود یا نه؟ نه، این نبود. سالها پیش و بعد از اینکه مدت‌ها مدتها با دوستان و با یه روان درمانگر بر روی این قضیه کار کردم، خودم بخشیدم. از یه چیز مطمئنم. قبلا منظورم پیش از تشخیص ملانوم هزار سال آزگار هم حاضر نبودم چیزی رو بگم که امروز توی گروه گفتم. جولیوس صدامه داد پیش از تشخیص ملانوم. کلید ماجرا اینجاست. حکم مرگ برای همه ما صادر شده. میدونم که شما به اندازه کافی این گفته‌های سرخوشانه رو از من شنیدید. ولی تجربه شهادت دادن به درستی این گفته خوردن مهر تایید بر پای اون و حتی تعیین زمان اجراش قطعا توجه منو بیشتر جلب کرد. ملانوم احساس رهایی عجیبی در من ایجاد کرده که ارتباط زیادی با افشاگری امروزم داره. شاید برای همینه که آرزو کردم کاش کمک درمانگر می‌داشتم. فردی بی‌طرف که میتونست مطمئنم کنه دارم در جهت منافع شما پیش میرم. جولیوس مکسی کرد و سپس افسود متوجه شدم که هیچ کدومتون به این حرف من که امروز چطور ازم مراقبت شده جوابی ندادید. بعد از چند لحظه سکوت، جولیوس اضافه کرد: و هنوزم جوابی می میبینین؟ برای همینه که دلم میخواست کمک درمان داشته همیشه معتقد بودم که وقتی موضوع مهمی هست که درباره‌اش حرفی زده نمیشه، درباره هیچ موضوع مهم دیگه‌ای هم نمیشه حرف زد. کار منم اینه که موانع و بردارم. آخرین چیزی که دلم میخواد اینه که خودم به یک مانه بدل بشم. حالا برام سخته که از خودم بیرون بیام. ولی حس میکنم شما دارین از من دوری میکنی. یا بذارین اینجوری بگم. شما دارین از بیماری مهلکم دوری میکنی. بانی گفت دلم میخواد درباره اتفاقی که داره برات میفته حرف بزنم. ولی نمیخوام ناراحتت کنم. بقیه هم با اون موافق بودند. خیلی خوب. حالا درست روش انگشت گذاشتید. حالا خوب به چیزی که میخوام بگم گوش کنید. فقط یه راه وجود داره که بتونید ناراحتم کنید و اون اینه که ازم فاصله بگیرید. صحبت با کسی که به یک بیماری کشنده مبتلا سخته. اینو خیلی خوب میدونم. مردم تمایل ندارن به نرمی از کنار قضیه رد بشن. نمیدونن چی باید بگن. تونی گفت این در مورد من صدق میکنه من نمی دونم چی باید بگم، ولی می سعی کنم کنارت بمونم. این رو حس می کنم تونی. فیلیپ گفت، علتش این نیست که مردم می با یه مصیبت زده ارتباط داشته باشن چون دلشون نمیخواد با مرگی که در انتظار تک تکشونه روبرو بشن. جولیو سری به تعیید تکان داد. این مهمه فیلیپ، بذار همینجا امتحانش کنیم. اگر هر کسی غیر از فیلیپ چنین حرفی میزد جولیوس بیچونو چرا میپرسید که آیا دارد احساس خودش را بازگو می کند یا نه؟ ولی در این مرحله فقط میخواست از حرف بجا و مناسب فیلیپ حمایت کند. گروه را از نظر گذران و منتظر پاسخ ماند. بانی گفت «شاید در چیزی که فیلیپ گفت حقیقتی وجود داره توی مدت یکی دو تا کابوس دیدم که انگار چیزی میخواست من رو بکشه. و بعدم همون کابوسی که براتون تعریف کردم که میخواستم سوار قطار بشم استوارت گفت منم میدونم که این روزا زیادی ترسو شدم یکی از همبازی های تنیسم یه متخصص پوسته و توی یک ماه اخیر دوبار ازش خواستم پوستم رو معاینه کنه ملانوم مدام تو فکر منه پم گفت جولیوس. از وقتی درباره ملانومت حرف زدیم مدام بهت فکر میکنم. اینکه من درباره مرد و سختگیرم تا حدودی درسته. ولی تو این وسط استثنایی. تو عزیزترین مردی هستی که تالا شناختم. و بله، البته که احساس میکنم دلم میخواد ازت حمایت کنم. ولی فیلیپ تو رو هدف قرار داد. این حس و پیدا کردم. فکر کردم و هنوزم فکر میکنم که این بیرحمی و بیملاحظگی اونو میرسونه. و این سوال که آیا به مرگ خودم بیشتر توجه میکنم یا نه؟ خب شاید اینجوری باشه ولی من ازش آگاه نیستم. میتونم بگم مدام به دنبال یافتن دلداری هایی هستم که میتونم بهت بدم. دیشب مدتب جالب خوندم. عبارتی از خاطرات ناباکوف که زندگی رو جرقه میان دو گدال تاریک همسان توصیف کرده بود. تاریکی پیش از تولد و تاریکی پس از مرگ. و چقدر عجیبه که ما برای دومی اینقدر نگرانیم و به اولی اینقدر میتوجه. در این گفته تسلای خاطر زیادی دیدم و بلافاصله علامت زدم که برات بخونمش. این یه هدیه است ازت ممنونم. اندیشه فوقلادهیه و حقیقتا اطمینان خاطر میده با اینکه مطمئن نیستم چرا با اون گودال تاریک اولی راحت ترم. انگار مهربون تره. شاید اون رو با وعده و امید و احتمالات پیش رو پر میکنم فیلیپ گفت این اندیشه برای شوپنهاور هم تسلای خاطر می و اتفاقا شک نیست که نابوکوف اون رو از شپنهاور کش رفته. شوپنهاور گفته بعد از مرگ همونی میشیم که پیش از تولد بودیم و بعد ثابت میکنه که امکان نداره بیش از یک جور نیستی در جهان وجود داشته باشه جولیوس فرصتی برای پاسخ پیدا نکرد پم نگاه خشماگینش را به فیلیپ دوخت و فریاد زد همینجا یه توضیح عالی داریم برای اینکه چرا علاقت به مشاور شدن یه شوخی وحشت ما درست وسط احساسات لطیف بودیم و چیزی که بیشترین اهمیت رو برای تو داره صحت منتصب کردنه فکر میکنی یه موقعی شوپنهاور یه چیزی گفته که شباهت گنگی به صحبت ما داشته واقعا که چه موضوع مهمی فیلیپ چشمانش رو بست و شروع کرد به از برخاندن انسان با شگفتی تمام پس از هزاران هزار سال نیستی ناگهان خود را میابد برای مدتی زندگی می کند و پس از آن دوباره دوره ای به همان اندازه طولانی از راه می رسد که دیگر نباید باشد. من بخش زیادی از گفته های شوپنهاور رو به خاطر سپردم. پاراگراف سوم رسالش با عنوان ملاحظات افسوده بر آموزه های بیپایگی هستی. به اندازه کافی برات گنگ هست؟ بانی با صدای بلند گفت بچه بچه هر داتون تمومش کنی. تونی گفت، بانی، قیدوبندت داره کمتر میشه، خوشم اومد. جولیوس پرسید، احساس دیگه، کسی نظری داره؟ گیل گفت، دلم نمیخواد گرفتار این آتیش بارون بشم. عرابه های بزرگ توپ به حرکت در اومدن. استوارت گفت، آره، هیچ کدومشون از هیچ فرصتی نمیگذرن. فیلیپ حتما باید نظری راجع به کسی که از شوپنهاور استفاده کرده میداد و پام همین فرصت رو از دست نداد که فیلیپ رو یه شوخی وحشتناک بدونه. من نگفتم یه شوخی وحشتناکه. گفتم؟ استوار عقب ننشست. دست بردار پم. پام. مته به خشخوش نزار. خودت میدونی منظورم چیه؟ و به هر حال اون همه سر و صدا برای نابوکوف معنی بود. تو به قهرمان اون توهین کردی و بعد از کسی نقل قول کردی که خودش جملات شوپنهاور رو قرض گرفته. چه ایرادی داره فیلیپ حرف تو اصلاح کنه؟ چه جنایتی بزرگی در اشاره اون به تقدم شوپنهاور وجود داره؟ تونی گفت باید یه چیزی بگم. مثل همیشه نمیدونم این فکولی ها دستکم این نابو نوبو؟ پم با لحنی نرم که مختص صحبت با تونی بود گفت نابو کف اون یه نویسنده بزرگ روسه. شاید اسم رمانش لولیتا رو شنیده باشی. آره دیدمش خب وقتی اینجور جور حرفا پیش میاد من توی یه چرخه معیوب میفتم وقتی یه چیزی رو نمیدونم میشه احساس حماقت کنم بعد کم حرف میشم و در نتیجه بیشتر احساس حماقت میکنم. برای اینکه این چرخه رو بشکنم باید حرف بزنم. رو کرد به جولیوس اگه بخوام جواب سوالش رو درباری احساسم بدم، باید بگم که یکی از حسام همینه، حماقت یکی دیگرش اینه که وقتی فیلیپ گفت به اندازه کافی برات گنگ هست، برای یه لحظه چشمم به دندوناش افتاد. دندونه تیزی واقعا تیز. و حس دیگه هم نسبت به پم پیدا کردم. برگشت رو به پم رو کرد. تو زن دلخواه منی، واقعا دوستت دارم. ولی یه چیزی رو هم بهت بگم مطمئنم دلم نمیخواد سر و کارم با اون روی بدت بیفته پم گفت میفهمم تونی گفت وو فراموش کردم مهمترین حرفمو بزنم اینکه این جر و بس ما رو از مسیر خارج کرده ما داشتیم در این باره حرف میزدیم زدیم که چطور ممکنه است تو محافظت یا دوری کنیم جولیوس بعد با حرفهای پم و فیلیپ موضوع رو کاملا عوض کردیم نکنه بازم داریم ازت دوری میکنیم میدونی الان چنین حسی ندارم. وقتی داریم اینجوری سامیمان کار میکنیم هیچ وقت توی یه مسیر نمیمونیم جریان فکر وارد بسترهای تازه میشه و اتفاقا، جولیوس رو کرد به فیلیپ این اصطلاح صمیمانه رو امدن به کار میبرم. فکر می کنم خشمت که برای اولین بار خودش رو اینجا نشون داد دقیقا نشونه صمیمیته فکر می کنم اونقدر به پم اهمیت میدی که از دستش عصبانی بشی. جولیوس میدانست فیلیپ به خودی خود پاسخی نمی دهد. پس ترقیبش کرد. فیلیپ؟ فیلیپ سری تکان داد و گفت نمی دونم این نظریت رو چجوری ارزیابی کنم. ولی چیز دیگه هم هست که میخوام بهت بگم. منم اعتراف می کنم که مثل پم میخواستم دلداریت بدم یا دستکم کم مربوط به این موضوع بزنم من عادت شوپنهاور رو پیش گرفتم که روزش رو با خواندن آثار اپیکتتوس یا بخشی از اوپانیشادها به پایان می برد. فیلیپ نگاهی به سمت تونی انداخت. اپیکتتوس فیلسوف رومی قرن دوم میلادیه و اوپانیشادها یکی از متون کوهن و مقدس هندوهاست. دیشب گت از اپیکتتوس خوندم که فکر کردم به درد این کار میخوره و کپیش کردم. ترجمه آزاد و غیر دقیق اون از لاتین به زبان رایج امروزی این میشه. کیفش را باز کرد و نسخه ها را میان افراد تقسیم کرد و بعد با چشمان بسته از حفظ خواند. وقتی در یک سفر دریایی کشتی لنگر میاندازد، از کشتی خارج می‌شوی تا نفسی تازه کنی و گیاه و صدفی جمع کنی. ولی همواره باید ذهنت را معطوف به کشتی نگهداری و مدام مراقب باشی مواد و ناخدای کشتی فرا دهد و باید به آن فراخوان گوش دهی و همه آن چیزها را رها کنی و بازگردی وگرنه با تو همچون گوسفندی رفتار می شود که با ریسمان می‌بندندش و به درون انبار کشتی می‌افکنند زندگی انسان نیز چنین است اگر زن و فرزند جای گیاه و صدف را بگیرند هیچ چیز نباید برای حفظشان جلو من باشد ولی آنگاه که ناخدا فرا بخواندمان باید به سوی کشتی دوید. همه ی آن چیزها را گذاشت و رفت و پشت سر را هم نگاه نکرد. و اگر در سالی باشی هرگز از کشتی زیاد دور نشو مبادا که ناخدا فرا بخواندت و تو آماده نباشی. فیلیپ خواندن را تمام کرد و جوری دستانش را گشود که انگار بگوید همین. گروه هم داشت قطعه را میخوند. همه بحت زده بودند. استوارت سکوت را شکست. در سعیم رو میکنم فیلیپ ولی سر در نمیارم این چه فایده برای جولیوس داره یا برای ما جولیوس اشاره ای به ساعتش کرد متاسفم بگم که وقتمون تمومه ولی بذارین معلمانه رفتار کنم و به یه نکته اشاره کنم خیلی پیش میاد که یه جمله یا یه عمل رو از دو دیدگاه ببینیم هم از دیدگاه محتوا و هم از دیدگاه فرایند. و فرایند یعنی اون که درباره ماهیت رابطه میان بخش های درگیر سخن میگه. استوارد، منم مثل تو بلافاصله از محتوای پیغام فیلیپ سردر نیووردم. باید مطالعهش کنم و شاید این محتوا موضوع صحبت یه جلسه باشه. ولی در مورد فرایند یه چیزایی دستگیرم شد. این رو میفهمم که فیلیپ، تو هم مثل پم به من فکر میکردی. میخواستی چیزی به من پیشکش کنی و برای این منظور هر کاری که لازم بوده انجام دادی. این قطعه رو حفظ کردی و از روی اون کپی گرفتی و معنی این چیه؟ محبت تو رو به من میرسونه و من چه حسی دربارهش دارم؟ تحت تاثیر قرار گرفتم قدرش رو میدونم و امیدوارم زمانی برسه که محبتت رو با زبون خودت ابراز کنی زندگی را می توان به تکه پارچه گلدوزی شده تشبیه کرد. هرکس در نیمه نخست عمر به تماشای رویه آن می نشیند و در نیمه دوم پشت آن را مینگرد پشتش چندان زیبانی است ولی آموزنده تر است. زیرا بیننده را قادر می سازد ببیند که چگونه رشده های نخ به هم پیوستهاند فصل سی وقتی اعضای گروه اتاق را ترک کردند، جولیو سمایشایشان کرد که چطور از پلکان جلوی وارد خیابان شدند. به جای آنکه پراکنده شوند و تک تک به سوی اتومبیل‌هایشان هایشان بروند، دست جمعی راهشان را بیشک به سوی کافه ادامه دادند. اوه چقدر دلش میخواست بادگیرش را بردارد و از پله ها پایین بدود و به آنها بپیوندد. اندیشید این کار مختص یک روز دیگر، یک زندگی دیگر و یک جفت پای دیگر است و آهسته به سوی راه رو و از آنجا به سمت کامپیوتر مطبش رفت تا یادداشت‌هایش را درباره جلسه گروه بنویسد ناگهان تصمیمش عوض شد به اتاق گروه برگشت پیپش را برداشت و در لذت عطر خوش تنباکوی ترکی غوطه‌ور شد این جلسه هم مثل سه چهار جلسه پیش کننده بود. به یاد گروه‌های بیماران دوچار سرطان سینه افتاد که مدت‌ها پیش سرپرستی می‌کرد. بارها و بارها پیش می‌آمد که عذاب پس از چیرگی بر هر سیناشی از پذیرش اینکه مرگشان نزدیک است، از یک دوران طلایی حرف می‌زدند. برخی می‌گفتند زندگی با سرطان موجب شده خردمندتر شوند. به خودشکوفایی برسند. بعضی هم عولیت های زندگیشان را دوباره میچیدند قویتر می, چیدند. قوی تر می شدند. یاد می‌گرفتند به آنچه دیگر برایشان ارزشی نداشت نه و به چیزهایی که واقعا مهم بود مثل عشق به خانواده و دوستان دیدن زیبایی های اطرافشان لذت مشاهده تغییر فصل آری بگویند ولی بسیار افسوس میخوردند که تنها پس از آنکه سرطان همه بدنشان را گرفته یاد گرفتند که چطور زندگی کنند این دگرگونی ها چنان پرشور و هیجان بود که بیماری مدعی بود که سرطان روان رنجوری را درمان می‌کند که یکی دو بار پیش آمد جولیوس با موزیگری صرفن این دگرگونی‌های روانشناختی را برای دانشجویانش تعریف کرد و بعد از آنها پرسید حدس بزنن چه درمانی برای این بیماران به کار گرفته شده است دانشجویان چقدر جا می خوردن وقتی میفهمیدند این روان درمانی یا دارو نبوده که چنین دگرگونی‌هایی ایجاد کرده بلکه صرفن رویارویی با مرگ چنین اثری داشته است بسیار مدیون آن بیماران بود هنگام نیازش چه الگوی فوقلادهی برایش بودند افسوس که دیگر نمی توانست این را به آنها بگوید به خود یادآوری کرد که درست زندگی کن و ایمان داشته باش که نیکی از تو به دیگران جاری خواهد شد حتی اگر خود از آن نیکی ها آگاه نباشی از خود پرسید و تو با سرطانت چه می کنی؟ اون دوره حراس رو خیلی خوب می خدا رو شکر گذروندمش. گرچه هنوز اون حمله های وحشتناک سر صبح سر جاش باقیه با هیچ چی نمی کرد هیچ چیز جز والیوم یا نور سپیددم یا فرو رفتن در وان آب داغ آرومش نمیکنه. و ولی آیا دگرگون یا خردمندتر شدم؟ به دوران تلائیم پا گذاشتم دنگر با احساساتم نزدیکتر شدم. شاید این یه نوعی رشد باشه. فکر میکنم نه مطمئنم که روان درمانگر بهتری شدم. گوشام خیلی تیزتر شده. بله شکی ندارم که درمانگر دیگه ای شدم. پیش از ملانوم هرگز نگفته بودم که آشق این گروه هم. حتی خوابش رام نمیدیدم که جوزیات خصوصی زندگیم، مرگ میریام، فرصت طلبی جنسیم رو برای گروه آشکار کنم. اندیشید و این وسواس مقاومت نپذیر امروزم برای اعتراف در گروه چیزی که اصلاً ازش سر در نمیارم. احساس میکنم چیزی برخلاف میلم منو به مقابله با آموزها و تعلیمهای حرفه ایم کرد. از یه چیز مطمئنم. اونا نمیخواستن بشنوند. صحبت از مقاومت. اونا هیچ از کاشتی ها یا هیچ بخشی از رویه تاریک منو نمیخوان. ولی وقتی اونو در معرض دیدشون قرار دادم اتفاق جالبی افتاد. تونی انگار عوض شده بود. درست مثل یه درمانگر ماهر عمل کرد. پرسید آیا از گروه راضی شدم یا نه؟ کوشش کرد رفتارم رو عادی جلوه بده. بر چرا حالا اصرار کرد. کارش حرف نداشت. حتی میتونم تصور کنم که بعد از من گروه رو سرپرستی کنه. اینم برای خودش چیزی میشه. درمانگری که از دوره کالج ترک تحسین کرده و محکومیت زندان در سابقش داره. و دیگران همه تلاششون رو کردند مراقبه بودن و گروه رو متمرکز نگه داشتند یونگ از اینکه گفته تنها تنهایی درمانگر زخمی میتونه حقیقتا درمان کنه منظور دیگه ای داشته ولی شاید تقویت مهارت های درمانی در بیماران توجیه کافی برای درمانگران باشه تا زخم های خودشون رو آشکار کنن جولیوز همانجور جور که آهسته راه رو رو پشت سر میگذاشت و به اتاق دفترش رفت همچنان به جلسه میاندیشید و گیل امروز خودی نشون داد. اینکه که پم رو قاضی نامید معرکه بود. فوقالعاده و دقیق عمل کرد. مجبور شدم به پم کمک کنم تا بتونه با اون بازخورد کنار بیاد. این از مواردی بود که بینش گیل از من تیزتر و دقیق تر عمل کرد. همه این مدت اونقدر پم رو دوست داشتم که از ناهنجاریش قافل مونده بودم. شاید به همین دلیل بود که نتونسته بودم در وسواسش درباره جان کمکش کنم. جولیوس کامپیوترش را روشن کرد و فایلی را با عنوان ترهای داستان کوتاه باز کرد. پرونده ای که هاویه پروژه بزرگ ناتمام زندگیاش بود. اینکه یک نویسنده واقعی شود. او در نوشتن مقالات تخصصی نویسنده خوبی بود. دو کتاب و یکصد مقاله در زمینه روانپزشکی نوشته بود. ولی آرزویش این بود که یک نویسنده ادبی شود و برای دههها ها را برای داستان کوتاه چه تخیلی و چه برگرفته از کار بالینیش گرد آورده بود. با اینکه چند بار کار را شروع کرده بود، هرگز وقت کافی و نیز شجاعت کافی برای تمام کردن و فرستادن یک داستان برای چاپ پیدا نکرده بود. فهرست طرحها را از نظر گذران و روی عنوان قربانیان با دشمنانشان رو در رو میشون کلیک کرد و دوتا از ایدههایش را خواند رویروی نخست در یک کشتی مجلل تفریحی در ساحل ترکیه روی میداد یک روانپزشک وارد کازیوی کشتی میشد و در آن اتاق پر از دود به یکی از همکاران سابقش بر میخورد مردی کلاهبردار که یک بار هفتاد و پنج هزار دلار از او کلاهبرداری کرده بود طرح رویارویی دوم هم مربوط به خانم وکیلی بود که دفاع از پرونده یک متهمه به تجاوز به عنف به صورت رایگان و برای امور خیریه به او واگذار شده بود در نخستین مصاحبهاش در زندان حدس میزند که متهم همان مردی است که ده سال پیش به خودش تجاوز کرده است جولیوز مدخل تازه ایجاد کرد و نوشت زنی در یک گروه درمانی با مردی روبرو می شود که سالها پیش استاد او بوده و از او سوء استفاده جنسی کرده است. بدک نیست. اندیشید ظرفیت زیادی برای تبدیل به یک داستان دارد گرچه میدانست این داستان هرگز نوشته نخواهد شد. مسائل اخلاقی در میان بود. نیازمند اجازه پم و فیلیپ بود که او نداشت. ولی جولیوس اندیشید ظرفیت خوبی برای یک درمان خوب هم دارد. یقین داشت که فقط اگر میتوانست این دو را در گروه نگهدارد و درد باز شدن زخم‌های قدیمی را تا باورد، چیزی مثبت از این درمان حاصل می‌شد. ترجمه فیلیپ از داستان مسافران کشتی را در دست گرفت. چندین بار خواند و کوشید معنا و ربطش را بفهمد. ولی باز هم در آخر فقط سری تکان داد. فیلیپ آن را پیشکشی برای تسلا و تسکین دانسته بود. ولی تسلایش کجا بود؟ حتی وقتی محرکی در کار نیست، مدام نگرانی استرابالودی در من هست که موجب می شود خطراتی را ببینم و جستجو کنم که وجود ندارند. این موضوع کمترین ناراحتی را برایم بینهایت بزرگ می کند و رابطه با مردم را بینهایت دشوار. فصل سی و یک. آرتور چگونه زیست؟ آرتور هنگام دریافت مدرک دکترایش در برلین زندگی می کرد. مدت کوتاهی به مونیخ رفت و بعد با گریز از همهگیری و با سی سال آخر زندگیش را در فرانکفورت ماندگار شد و دیگر حتی برای سفر یک روزه هم ترکش نکرد. هیچ کار درآمدزایی نداشت. در خانه های ای زندگی میکرد. هرگز خانه‌ای، کاشانهی، همسری، خانواده‌ای و دوستانی سمیمی نداشت. متعلق به هیچ محفل اجتماعی نبود، آشنایان نزدیک و احساس تعلق به جمع در او دیده شد. در واقع اغلب موضوع ریشخند اهالی محل بود. تا چند سال آخر زندگیاش هیچ شنونده، خاننده یا درآمدی از نوشته هایش نداشت. از اونجا که روابطش بسیار اندک و انگشت شمار بود، مکاتبات معدودش عمدتا جنبه کاری و تجاری داشت. به رغم نداشتن دوست ما بیش از هر فیلسوف دیگری از زندگی خصوصیش مطلعیم زیرا نوشته های به طرز شخصی شخصیست عجبا که این شخصی ترین فیلسوف چونین غیر و بیاتفه زندگی کرده است شوپنهاور علاوه بر ارجاعات شخصی موجود در آثارش در سندی با عنوان یونانی درباره خودم مسائل زیادی درباره خود آشکار کرده است کتابی دست نویس و سرشار از رمز و راز و مناقشه که داستان غریبش چنین است در اواخر زندگی آرتور حلقه بسیار کوچکی از متاسبان پرشور یا مبلغان که شوپنهاور تحملشان می کرد ولی نه احترامی برایشان قائل بود و نه دوستشان داشت پیرامونش جمع شدند این آشنایان اغلب می شنیدند. او از یک دفتر خاطرات به نام درباره خودم حرف میزند که در آن از مشاهدات سی ساله اخیر درباره خودش نوشته است ولی پس از درگذشتش اتفاقی غریب افتاد. درباره خودم هیچ کجا یافت نشد. پیروان شوپنهاور پس از جستجوی بیهوده به سراغ کارگزار وسیعتنامه شوپنهاور رفتند و درباره کتاب گمشده پرسیدند. او به آنان گفت درباره خودم دیگر وجود ندارد چون شپنهاور به او دستور داده بوده بلا فاصله پس از مرگش آن را بسوزاند. ولی کمی بعد همان کارگزار نخستین زندگی نامه آرتور شپنهاور را نوشت و آن مبلغان اصرار داشتند که در این زندگی نامه بخشای از کتاب درباره خودم را چه به صورت نقل قول مستقیم و چه به صورت تغییر یافته باز شناختند. آیا کارگزار پیش از سوزاندن دستنویس، نسخه ای از آن تهیه کرده بود یا اصلا آن را نسوزانده بود، بلکه به یغما برده بودش تا از آن برای نوشتن زندگی نامه بهره ببرد؟ سرانجام محقق دیگری کتاب درباره خودم را بر اساس کتاب آن کارگزار و سایر نوشته های شوپنهاور بسازی کرد و در چهل و هفت صفحه و در پایان اثری چهار جدی به نام دستنوشته های بازمانده منتشر کرد. خانش درباره خودم تجربه غریب است زیرا به دنبال هر بند توصیف خواستگاه پیچیده آن بند آمده که اغلب طولانی تر از خودم متن است. چرا آرتور شوپنهاور هرگز شغلی نداشت؟ داستان تدبیر کامیکازیوار آرتور در به آوردن یک مقام دانشگاهی یکی دیگر از آن قصه های عجیب و غریبی است که در همه روایت های موجود از زندگی نامه شپنهاور موجود است. کامیکازی در زبان ژاپنی به خلبان‌های جنگ‌افزایی گفته می‌شود که هواپیماهایشان را پر از بمب کرده و به کشتی دشمن می‌زدند. کار آموزگاری برای نخستین بار در سال 1820 و در سن 32 سالگی به او پیشنهاد شد. موقعیتی موقتی با درآمدی بسیار پایین برای تدریس فلسفه در دانشگاه برلین. ولی او چه کرد؟ بیدرنگ و عمدن برنامه سخنرانیش را درست در همان ساعتی قرار داد که هگل رئیس دپارتمان و مشهورترین فیلسوف زمان خود درس داشت دویست دانشوی مشتاق در کلاس هگل به هم چپیده بودند در حالی که تنها پنج دانشجو آمده بودند تا به گوش دهند که خود را یک خونخواه معرفی می کرد که آمده تا فلسفه پساکانتی را از تزادهای بیمنار آزاد کند معلوم بود که منظور شپنهاور هگل و فیشته است. روشن است که هیچ یک از اینها شپنهاور جوان را نزد هگل یا سایر اعضای دانشکده محبوب نمیکرد و وقتی در نیم سال بعدی هیچ دانشجویی در درس شوپنهاور ثبت نام نکرد حرفه دانشگاهی کوتاه و بیپروایش به پایان رسید. هرگز دوباره سخنرانی عمومی نگذاشت. چپنهاور در سی سالی که در فرانکفورت بود تا زمان مرگش در سال 1860 برنامه روزانه منظمی را که تقریباً به دقت برنامه روزانه کانت بود رعایت کرد. روزش با سه ساعت نوشتن آغاز می و به دنبال آن یک و گاهی دو ساعت فلوت میزد. هر روز در رودخانه سرد ماین چنامی کرد و به ندرت یک روز را حتی در میانه زمستان از دست میداد. همیشه در باشگاه انگلیشرهاف ناهار می‌خورد. فراک میپوشید و کراوات سفید میزد. لباسی که در جوانیش باب روز بود، ولی در فرانکفورت میانه قرن 19 هم آشکارا از رواج افتاده بود. هر کس که می‌خواست این فیلسوف عجیب و عیبجو را ملاقات کند، باید به همان باشگاه نهارش میرفت. در انگلیشرهاف حرف و حدیث‌ها درباره شوپنهاور فراوان بود. اشتهای فوق‌العاده‌اش که اغلب غذای دو نفر را می‌خورد. هرگاه کسی به این موضوع اشاره می‌کرد، میگفت او به جای دو نفر هم فکر می کند. همیشه پول دو غذا را میداد تا مطمئن شود کسی کنارش نمی نشیند. مکالمه های خشن و نیزی رکانهش. فوران های مکرر خشمش. فهرست سیاهش از افرادی که حاضر نبود با آنها سخن بگوید. تمایلش به بحث درباره موضوعات نامتناسب و ناپسند. گرچه از گفتگوهای جدی لذت می‌برد، به ندرت در حین غذا خوردن مصاحبانی می‌یافت یا آنها را شایسته وقت گذرانی با خود بداند. تا مدتی عادت داشت در حین غذا خوردن سکه طلایی روی میز بگذارد و هنگام رفتن آن را بردارد. یک بار یکی از افسران ارتش که معمولاً بر سر همان میز غذا می‌خورد، هدف او را از این کار پرسید. شوپنهاور پاسخ داد: روزی که بشت افسران دفسران گفتگویی جدی دارند که پیرامون چیزی جز از پا یا زنانشان می گردد، آن سکه طلایی را به فقرا خواهد بخشید. در حین غذا ممکن بود سگش آتمن را هی آقا صدا بزند و اگر آتمن بد رفتاری می کرد، هی آدم خطابش میکرد کرد. داستانهای زیادی هم درباره تیزهوشی آرتور گفتند. یک بار کسی از او پرسشی کرد که آرتور به سادگی پاسخ داد نمی دانم. مرد جوان گفت: عجب، عجب! من فکر می کردم شما که فرزانه بزرگی هستید، همه چیز را میدانید. شوپنهاور پاسخ داد: نه، دانش محدود است. فقط حماقت است که حدی ندارد. پرسش زنان از شپنهاور یا پرسش درباره زنان و ازدواج بیچون و چرا پاسخی تند و تلخ در پی داشت. یک بار مجبور شده بود هم نشینی با زنی بسیار پر حرف را تاب آورد که مصیبت ازدواجش را با آب و تاب تعریف می کرد. با شکیبایی گوش داد ولی وقتی زن پرسید آیا درکش می کند یا نه پاسخ داد؟ نه ولی همسرتان را خوب درک می کنم. در گفتگوی دیگری از او می خواهند ازدواج کند. هیچ انگیزه ای برای ازدواج ندارم. چون این کار فقط باعث نگرانیم می شود. و چرا اینجور است؟ دوچار حسادت می چون همسرم به من خیانت خواهد کرد از کجا اینقدر مطمئنید؟ چون سزاوار خیانتم چرا؟ چون ازدواج کردم سخنان تندوتیزی هم درباره پزشکان دارد یک بار گفته پزشکان دو دست خط دارند به زحمت خانه برای نوشتن نسخه ها و روشن و خانه برای نوشتن صورت حساب ها نویسنده ای که شوپنهاور در سال 1846 در 58 سالگی و هین نهار ملاقات کرده بود او را چونین وصف کرده است خوشندام کاملا خوشلباس ولی با هی از رواج افتاده متوسط القامه با موهای نقرهی کوتاه. چشمان آبی فام خنددان و فوق باهوش که درم اش را به نمایش میگذاشت و به شیوه خاص رک سخن میگفت و با همین شیوه هر روز میزان قابل توجهی حجم مبتزل برای همنشینانش میگفت به این ترتیب این حجم های اغلب به طرز مستحکی برخورنده ولی بی آزار و خشن و در عین حال همراه با خوشتینتی همنشین را آماج شوخی مردان فرومایی قرار میداد که مدام مسخرش میکردند گرچه هجوها به راستی معنای بدی نداشتند. شوپنهاور پس از نهار به یک پیاده طولانی می رفت که اغلب به تکگویی یا گفتگویی قابل شنیدن با سگش می گذشت. و ریشخند کودکان را به همراه داشت. اصرها را به مطالعه در اتاقهایش می و هرگز بازدید کننده ای نمی پذیرفت. شواهدی داله بر وجود رابطه عاشقانه در فرانکفورت وجود ندارد و در سال 1831 در سن 43 سالگی در درباره خودم نوشته خطر زندگی بدون شغل با درآمدی کم را تنها میتوان با تجرد پذیرفت او هرگز مادرش را پس از قطع رابطهشان در 31 سالگی ندید ولی دوازده سال بعد در سال 1813 چند نامه مرتبط با مسائل مالی میانشان رد و بدل شد و مادر در سال 1835 از دنیا رفت. یک بار که بیمار شده بود مادرش عبارتی خصوصی و نادر برایش نوشت. اینکه دو ماه را در اتاقت گزرانده ای بدون آنکه حتی یک تن را ببینی اصلا خوب نیست بسرم و قمگینم می کند. یک مرد نمیتواند و نباید خود را اینجور جور کند. گهگاه نامه میان آرتور و خواهرش عادل رد و بدن میشد که در آنها عادل بارها و بارها پوشید به برادرش نزدیک‌تر شود و در تمام مدت به او اطمینان خاطر میداد که هرگز از او چیزی نخواهد خواست. ولی آرتور مکررا پس میکشید. عدل که هرگز ازدواج نکرد با نومیدی فراوان زیست، وقتی به خواهرش گفت برای فرار از وبا برلین را ترک می کند، او نوشت از وبا استقبال خواهد کرد چون به بدبختیش پایان خواهد داد. ولی آرتور باز هم بیشتر پاپس کشید و مطلقاً حاضر نشد به سوی زندگی و افسردگی خواهرش کشیده شود. پس از آنکه آرتور خانه را ترک کرد، آنها فقط یک بار در سال 1840 و در دیداری کوتاه و ناخوشایند یکدیگر را ملاقات کردند. و عادل نه سال بعد درگذشت. پول دقدقی همیشگی زندگی شپنهاور بود. مادرش ملک کوچکش را برای عادل گذاشت و عادل بدون آنکه ملکی از خود به جای گذارد از دنیا رفت. آرتور بیهوده کوشید شغلی به عنوان مترجم پیدا کند و کتابهایش فقط در آخرین سالهای زندگیش فروش رفتند و به وسیله مطبوعات نقد شدند. خلاصه آرتور بدون تمامی راحتی‌ها و یا پاداش‌هایی که فرهنگش برای تعادل و حتی بقا ضروری می‌دید زندگی کرد. چطور این کار را کرد؟ چه بهایی پرداخت؟ اینها همان جور که خواهیم دید همان رموزی بود که در درباره خودم آشکار کرد. آثار جاودان ایده هایی که از کسانی همچون من بر جای میمانند بزرگترین لذتم در زندگی اند بدون کتاب ها من مدت ها پیش گرفتار نومیدی شده بودم فصل 32 جولیوس هفته بعد هنگام ورود به اتاق گروه با صحنه عجیب روبرو شد اعضا ولو بر بلصندی هایشان به دقت در حال مطالعه ی حکایت فیلیپ بودند اسوارت نسخه خودش را روی تخته رسم گذاشته بود و همانجور که میخاند زیر جملات خط میکشید. تونی که فراموش کرده بود نسخه خودش را بیاورد از روی شانه پام سرک کشیده بود و از روی نسخه او میخاند. ربکا با نشانی از خشم در صدایش جلسه را آغاز کرد. من اینو با جدیت کافی خوندم. ای که فیلیپ به همه داده بود را بالا گرفت و بعد آن را تا کرد و در کیفش گذاشت وقت کافی براش گذاشتم فیلیپ در واقع زیادی هم براش وقت گذاشتم و حالا دلم میخواد ربط این متن رو با من یا این گروه یا جولیوس روشن کنی فیلیپ پاسخ داد فکر میکنم اگه اول کلاس دربارهش بحث کنه فایده تمرین بیشتر میشه ربکا در حالی که کیفش را با سر و صدا بست پرسید. کلاس؟ پس برای همینه که این شبیه تکلیف درسیه. فیلیپ تو اینجوری مشاوره میدی؟ مثل یه معلم توی کلاس؟ من برای چنین چیزی اصلا آماده نیستم. من اومدم اینجا درمان بشم. کلاس اکابر که نیومدم. فیلیپ توجهی به حساسیت و زوجرنجی ربکا نکرد. مرز بین آموزش و درمان در بهترین حالت هم خیلی مبهمه یونانیها سقرات افلاتون ارستور رواقیون و ها همه معتقد بودند که آموزش و منطق ابزارهای لازم برای پیکار با رنج انسانیاند بیشتر مشاوران فلسفی آموزش را اساس درمان میدونند تقریبا همگی به شعار لاپنیس به معنای خرد و محبت استناد می‌کنند. فیلیپ رو کرد بتونی لایبنیلسی یه فیلسوف آلمانی در قرن هفدهم بود. پم گفت این کارت به نظر من هم کسل کننده است هم گستاخانه. وانمود میکنی که داری به جولیوس کمک میکنی ولی صدایش را یک پرده بالاتر برد. فیلیپ دارم باید حرف میزنم. فیلیپ که بی حرکت به سقف خیره شده بود از جا پرید. صاف نشست و رو کرد به پم. اول این تکلیف سطحی رو بین همه پخش می‌کنی و حالا هم داری با شونه خالی کردن از بیان تفسیر خودت از این قطعه گروه رو کنترل می‌کنی. گیل گفت: دوباره داری سعی می‌کنی فیلیپ رو خراب کنی. تو رو خدا پم، اون یه مشاور و یه فیلسوفه. لازم نیست دانشمند اتمی باشی تا بفهمی که اون میخواد به کمک چیزی که توش مهارت داره روی گروه تأثیر بذاره. چرا با همه چیزش مخالفت می‌کنی؟ پم دهانش را باز کرد تا پاسخ دهد ولی انگار کلامی نیافت و دوباره آن را بست. بگیل خیره شد که اضافه کرد. تو بازخورد مستقیم میخواستی پم. بفرمو. و نه چیزی ننوشیدم. اگه داری به این موضوع فکر میکنی روز چهاردهم هشیاریمه دو دوبار در هفته با جولیوس جلسه دارم. اون حیجان لازم رو ایجاد کرد. پیچا رو سفت کرد و وادارم کرد هر روز به جلسات ای ای برم. هفت روز هفته. چارده جلسه توی چارده روز. این هفته پیش نگفتم چون مطمئن نبودم بتونم ادامش بدم. همه اعضا جوز فیلیپ با سرتکان دادن و تبریک گفتن واکنش های پرمایهی نشان دادند. بانی گفت به او افتخار می کند. حتی پم هم گفت برات خوشحالم. تونی گفت شاید منم باید همراهت بیام. به های کبودش اشاره کرد. سیامس، سیام کبودی به بار میاره. جولیوس پرسید: تو چی، فیلیپ؟ جوابی داری به گیل بدی؟ فیلیپ سری به نفت تکان داد. اون به اندازه کافی از بقیه حمایت دریافت کرد. اون هوشیاره. حرف میزنه و داره قوی میشه. گاهی حمایت زیادی کارو بدتر میکنه. جولیوس گفت: من از شوار لایبنیس خوشم میاد خرد و محبت ولی دلم میخواد اینو فراموش نکنی که گیل سزاوار حمایته تو چرا باید همیشه صف باشی؟ و یه چیز دیگه تو اطلاعات منحصر به فردی داری چه کسی به غیر از خودت میتونه به تو احساساتت رو درباره دفاع گیل از تو و وایسادنش در برابر پن وصف کنه؟ فیلیپ پاسخ داد خوب گفتی احساسات درهمبرهمی دارم از حمایت گیل خوشم اومد و همزمان با این خوش اومدن محتاطانه برخورد میکنم برای جنگیدن به دیگران تکیه کردن همان و تحلیل رفتن عذالات همان تونی با اشاره به برگه گفت من واقعا داستان این قایق و نمیفهمم هفته پیش گفتی میخواد چیزی تسکین دهنده به جولیوس بدی ولی داستان این قایق و مسافراش بذار رک بهت بگم اصن نمیفهمم چی به آدم میده بانی گفت اسقای نکن تونی قبلا هم بهت گفتم که همیشه از زبون من حرف میزنی منم بیشتر از تو از این کشتی و صدف جمع کنی سر در نمیارم استوارت گفت منم هم همینطور نمیفهمم پام گفت بذارین کمک کنم بالاخره تفسیر ادبیات راه پول دروردن منه قدم اول اینه که از وجه عینی متن یعنی کشتی، صدف، گوسفند و غیره شروع کنید و به وجه انتظایی اون برسید. به عبارت دیگه از خودتون بپرسید این کشتی یا صدف یا بندر نماد چی اند؟ اسوار با نگاهی به تخته رسمش گفت: فکر کنم کشتی نماد مرگ یا سفر به سوی مرگ. پام گفت: خیلی خوب. از این به چه می رسی؟ اسوارت پاسخ داد به نظرم میخواد بگی خیلی به جزئیات ساحل همیت نده وگرنه از کشتی جا میمونی تونی گفت خب اگه زیادی مشغول ساحل بشی حتی زن و بچه پیدا کنی ممکنه کشتی بدون تو حرکت کنه به عبارت دیگه ممکنه از مرگت جا بمونی خب این به نظر شما فاجعه بزرگیه؟ ربکا گفت آره آره حق با تواتونی من منم کشتی رو نماد مرگ دیدم ولی آخه اینجوری بیمعنی میشه گیل گفت منم نمیفهمم ولی نمیگه از مرگ جا میمونی میگه مثل گوسفند تنا پیچت میکنن و میبرنت ربکا گفت حالا هرچی ولی این بازم شبیه درمان نیست رو کرد به جولیوس این قراره به درد تو بخوره تو باهاش تسکین پیدا کردی؟ فیلیپ، چیزی رو که هفته پیش بهت گفتم تکرار میکنم. برداشت من اینه که تو میخوای چیزی به من بدی که عبور از این هفتخان رو برام آسون تر کنه. و به علاوه خجالت جالت میکشی این کار رو سریع انجام بدی. به جای اون یه راه کمتر شخصی رو انتخاب میکنی. فکر میکنم برنامه برای آیندت اینه که روی ابزار شخصی تر محبتت کار کنیم. در محتوا من هم گیجم ولی برداشتم اینه که از اونجایی که قایق هر لحظه ممکنه راه بیفته یعنی مرگ هر لحظه میتونه از راه برسه و ما رو با خودش ببره باید از وابستگی زیاد به چیزای دنیوی پرهیز کنیم شاید به همون میده که وابستگی عمیق مرگ رو دردناکتر میکنه فیلیپ اینه اون پیام تسکین دهندهی که سعی میکنی به من بدی؟ پیش از آنکه فیلیپ به پاسخ گوید پم به میان صحبت دوید فکر می کنم اینجوری بهتر جا می اگه کشتی و سفر رو نماد مرگ ندونیم. بلکه نمادی از زندگی اصیل و معتبر بدونیم. به عبارت دیگه هرچی بیشتر بر حقیقت بنیادین بودن محض یا موجزه هستی تمرکز کنیم اصیل زندگی خواهیم کرد. اگه بر بودن تمرکز کنیم، چندان مجزوب سرگرمی های زندگی یعنی اشیاء مادی جزیره که باعث میشن خود هستی رو نبینیم نمیشیم. سرها به سوی فیلیپ برگشت. فیلیپ با اثری از اشتیاق در صدایش پاسخ داد. دقیقا، نظر من هم دقیقا همینه. ایده اصلی اینه که فرد باید آگاه باشه که دار خودش رو در سردرگومی های زندگی از دست میده. هایدگر این حالت رو مچلوب شدن در روزمرگی زندگی مینامید. میدونم تا به تحمل هایدگر رو نداری پم ولی معتقدم گمراهیش در عالم سیاست نباید ما رو از بینش های فلسفیش محروم کنه. به قول هایدگر نتیجه افتادن در روزمرگی از دست دادن رهایی و گرفتار شدن مثل یک گوسفنده. فیلیپ ادامه داد منم مثل پم معتقدم این حکایت به ما درباره وابستگیها هشدار میده و وادارمون میکنه با موجزه بودن همراه بمونیم. نگران چگونگی بودن چیزها نباشیم. بلکه در مرحله شگفتی از بودن چیزها یعنی صرف بودنشون بمونیم. بانی گفت فکر میکنم حالا منظورت رو میفهمم. ولی خیلی سرد و بیاحساس و انتظاییه چه تسکینی توی این هست برای جولیوس یا هر کس دیگه؟ برای من تسکین در این دست که مرگم از زندگیم تاثیر میگیره. فیلیپ با تب و تابی غیر معمول حرف میزد. تسکین در این دست که اجازه ندم چیزهای پیش پا افتاده موفقیت های شکست های بی اهمیت، چیزهایی که در تملک منه نگرانی های درباره محبوبیت و اینکه کی از من خوشش میاد و کی ازم خوشش نمیاد جوهر هستیم رو ببلعه برای من آزاد موندن و قدردانی از موجزه بودن یه جور تسکینه استوارت گفت صداد پر انرژی شده ولی منم فکر میکنم این شیوه سرد و بیخون و بیرحمانه است یه تسکین سرد لرز میاره اعضا ها واج مانده بودند حس می فیلیپ چیزی ارزشمند برای پیشکش داشته ولی شیوه ی قریب اون مثل همیشه سردرگمشان کرده بود پس از سکوتی تونی از جولیوس پرسید به دردت میخوره؟ منظورم چیزی که بهت پیشکش شده کمکت میکنه؟ کمکی به من نمیکنه تونی با این حال همونجور که گفتم رو کرد به فیلیپ و ادامه داد تو دستت رو پیش آوردی تا چیزی رو به من بدی که به خودت کمک کرده این رو هم میفهمم که این دومین باریه که چیزی رو به من پیشکش میکنی که نتونستم ازش بهره‌ای ببرم و این بار باید تو رو سرخورده کرده باشه فیلیپ سری تکان داد ولی ساکت ماند پم گفت بار دوم؟ اولی رو یادم نمیاد. مربوط به موقعیه که من نبودم؟ چند سر به نشانه نفتکان خورد. هیچ کس بار اول را به یاد نمی آورد. پس پام از جولیوس پرسید. جخالی جو های این وسط هست که باید پر بشه؟ جولیوس گفت. یه تاریخچه قدیمی بین من فیلیپ هست. خیلی از معماهای امروز به وسیله این تاریخچه حل میشه. ولی حس میکنم انتخاب با تو فیلیپ هر وقت آماده بودی. فیلیپ گفت: دلم میخواد همه چیز مطرح بشه. تو اختیار تام داری. نه. منظورم اینه که این من نیستم که باید این کارو بکنم. با نقل به مضمون از خودت. تمرین بهتری میشه اگه خودت مطرحش کنی. فکر می کنم این نیاز خودت و مسئولیت خودته. 25 سال پیش برای چیزی که امروز اون رو اعتیاد جنسی مینامند نامند به جولیوس مراجعه کردم. درنده سیری بودم با نیاز بالا و کمتر می شد به چیز دیگه ای فکر کنم. همه وجودم صرف یافتن زنها می و به محض دست یافتن به یه زن علاقه مو بهش از دست می دادم. وقتی این اتفاق میافتاد برای مدت کوتاهی از شر این اجوار و اسفاسی خلاص می شدم ولی خیلی سود گاهی فقط چند ساعت بیشتر طول نمی کشید دوباره نیاز به پرس زنی رو حس می کردم گاهی در عرض یک روز با دو یا سه تا زن ارتباط داشتم مستاصل شده بودم دلم میخواست ذهنم را از این آخر بیرون بکشم دوست داشتم به چیزای دیگه فکر کنم اصفهان بزرگ گذشتگان رو درک کنم اون موقع شیمی خونده بودم ولی در حسرت خرد حقیقی بودم دنبال کمک یشتم بهترین و گرون قیمتترین کمک در دسترس رو پیدا کردم هر هفته با جولیوس جلسه داشتم گاهی هم هفتهی دو جلسه سه سال تمام طول کشید ولی هیچ نتیجه ای نگرفتم فیلیپ مکزی کرد اعضا حرکتی به خود دادند جولیوس پرسید چطور میگذره فیلیپ؟ میتونی جلوتر بری یا برای امروز کافیه؟ فیلیپ پاسخ داد، من خوبم. بانی گفت، وقتی چشماتو میبندی، فهمیدن حالت مشکل میشه. برای میبندیشون که از عدم تایید بقیه میترسی؟ نه، چشمامو میبندم تا بتونم درون خودم رو ببینم و افکارم رو جمع جور کنم. و مطمئن برای خودم روشنه که فقط تعیید خودم برام اهمیت داره باز هم گروه مسهور همان حس لمس ناپذیری فیلیپ شد که انگار به این جهان تعلق نداشت تونی کوشید این حس را زایل کند و زیر لب زمزمه کرد تلاش خوبی بود بانی فیلیپ بدون گشودن چشمانش ادامه داد چیزی از کنار گذاشتن درمانم با جولیوس نگذشته بود که میزان قابل توجهی پول از حساب وراثتی که پدرم برم گذاشته بود به ارث بردم. این پول باعث شد بتونم شغل شیمیدانی را ترک کنم و همه وقتم رو به خوندن فلسفه غرب اختصاص بدم تا حدودی به دلیل علاقه همیشگین به این رشته. ولی در اصل به این دلیل که اعتقاد داشتم جایی در این خرد جمعی متفکران بزرگ جهان درمانی برای خودم پیدا میکنم وقتی فلسفه می خوندم انگار توی خونه خودم بودم و خیلی زود متوجه شدم که حرفه حقیقی خودم رو پیدا کردم درخواست دادم و در رشته دکتورای فلسفه دانشگاه کلمبیا پذیرفته شدم همین موقع بود که پم این بدقبالی را ورد که سر راهم قرار بگیره فیلیپ با چشمان همچنان بسته مکسی کرد و نفس عمیقی کشید چشمان همه به او بود البته هر از گاهی نگاه های به پم می انداختن که به زمین خیره شده بود. کم کم تصمیم گرفتم توجه هم رو بر سه فیلسوف حقیقتاً بزرگ معطوف کنم. افلاتون کانت و شوپنهاور. ولی در تحلیل نهایی فقط شوپنهاور بود که کمکم کرد. نه فقط کلماتش برام حکم طلای ناب رو داشت، بلکه کشش شخصی زیادی هم نسبت به اون حس می کردم. به عنوان یه موجود منطقی اعتقادی به تناسخ به معنای آمیانش ندارم. ولی اگه در گذشته به دنیا آمده بودم یه آدمی مثل شپنهاور شده بودم. به این دلیل ساده که زندگیش با درد نهایی من خیلی جوره. بعد از خوندن و دوباره خوندن آثارش در عرض چند سال متوجه شدم که بر مشکلات جنسیم غلبه کردم. اون موقع دکترای فلسفم رو گرفته بودم. میراس پدرم ته کشیده بود و باید خرج زندگیم رو در میابردم. چند جایی در کشور تدریس کردم و چند سال پیش دوباره به سانفرانسیسکو برگشتم و پیشنهاد کاری دانشگاه کستان رو پذیرفتم. در نهایت علاقم رو به تدریس از دست دادم چون هیچ وقت به دانشجویی که شایسته من و موضوع مورد علاقم باشه بر نخوردم. و بعد حدود سه سال پیش به نظرم اومد حالا که فلسفه من رو درمان کرده شاید بشی از اون برای درمان افراد دیگه هم استفاده بکنم در یه دوره آموزشی مشاوره نام نویسی کردم و بعد هم یه کار بالینی کوچیک رو شروع کردم و همینه که الان اینجا هستم پام گفت جولیوس دردی از تو دوا نکرد ولی دوباره باهاش تماس گرفتی؟ چرا؟ من چنین کاری نکردم. اون بود که با من تماس گرفت. پام قرید اوه آره جولیوس کاملا غیرمنتظره منتظره با تماس گرفت. بانی گفت. نه نه پم درست میگه. جولیوس وقتی تو نبوده این رو تعیید کرد. نمیتونم در این بار متقایدت کنم چون خودم هم هیچ وقت نفهمیدم که چرا این کار کرده. جولیوس گفت. خب بذارید اینجا رو من بگم. سعی می به بهترین وجه ممکن بازسازیش کنم. چند روز اول بعد از دریافت خبر بعد از دکترم گیج و سراسیمه بودم و سعی می راهی پیدا کنم تا با این موضوع که به یه سرطان کشنده دوچارم کنار بیام. یه شب وقتی داشتم به معنای زندگیم فکر می خیلی دلگیر و بد شدم. به این فکر میکردم که مقدر شده به نیستی به پیوندم و برای همیشه همونجا بمونم. و اگه اینجوریه چه فرقی میکنه که آدم چیکار کرده باشه یا کی باشه؟ همه ی رشته افکار بیمارگونم رو یادم نیست. ولی میدونم یا باید به یه معنای چنگ میزدم یا توی اون آباد گرفتار میموندم. وقتی به مرور زندگیم پرداختم متوجه شدم منای زندگیم رو قبل از این تجربه کرده بودم. این معنا همیشه این بوده که از خودم بیرون بیام و به دیگران کمک کنم زندگی کنن و به آرزوهاشون برسن. مهفری بودن کارم به عنوان یه روان درمانگر رو روشنتر از همیشه دریافتم و بعد ساعتها به کسانی فکر کردم که کمکشون کرده بودن. همه بیمارانم جدید و قدیم از جلوی چشمام رژه رفتن. افراد زیادی رو میشناختم که کمکشون کرده بودم. ولی آیا تأثیر پایداری هم بر زندگیشون گذاشته بودم. این سوالی بود که به جونم افتاده بود. فکر میکنم پیش از اومدن پم برای گروه گفتم که بد جوری لازم بود جواب این سوالم رو پیدا کنم. و برای همینم تصمیم گرفتم با بعضی از بیمارای قدیمیم تماس بگیرم تا بفهمم آیا واقعا تغییر ایجاد کردم یا نه؟ میدونم به نظر احمقا نمیاد. بعد همینجور که پرونده بیمارای قدیمیم رو جسه گریخته میخوندم شروع کردم به فکر کردن درباره اونایی که نتونستم کمکشون کنم. چه اتفاقی براشون افتاده بود؟ نمیدونستم. کار بیشتری از برمی اومد که براشون انجام بدم. و بعد این فکر، این آرزو شکل گرفت که شاید بعضی از شکستام تأثیر دیررسی به همراه داشته. شاید اون افراد از کاری که با هم انجام داده بودیم تاثیر تأخیری و دیررسی دریافت کرده بودن. اون وقت بود که چشمم به پرونده فیلیپ افتاد و یادمه به خودم گفتم اگه دنبال شکست میگردی بفرما. اینم یه شکست چاق و چله این از اون کساییه که اصلا نتونستی کمکش کنی حتی یه ذرم نتونستی مشکلاتش رو حل کنی از اون لحظه به بعد تصمیم گرفتم با فیلیپ تماس بگیرم و بفهمم چه اتفاقایی براش افتاده ببینم بالاخره براش مفید بودم یا نه پم گفت پس اینجوری شد که بهش تلفن کردی ولی چی شد که اون وارد گروه شد؟ جولیوس گفت فیلیپ میخوای از اینجا به بعدش خودت ادامه بدی؟ فیلیپ با رد مختصری از خنده بر لبانش گفت معتقدم تمرین بهتر میشه اگه تو ادامهش بدی جولیوس به سرعت گروه را در جریان باقی ماجرا قرار داد ارزیابی فیلیپ از درمان او که آن را بیارزش دانسته و اینکه شوپنهاور روان درمانگر اصلی او بوده دعوت ایمیلی فیلیپ از او برای شرکت در سخنرانیش درخواست فیلیپ برای سرپرستی او تونی به میان صحبت دوید من نمیفهمم فیلیپ اگه درمان جولیوس هیچ ای برات نداشت چه دلیلی داشت که سرپرستی اون رو برای خودت بخوای فیلیپ گفت جولیوس همین سؤال رو چندین بار مطرح کرده. جوابم اینه که گرچه کمکی بهم نکرده، دست کم مهارت فوق‌العاده‌اش رو در کارش قبول داشتم. شاید من یه بیمار کل شق و بدقلق و مقاوم بودم یا شاید مشکل من با روی کرده اون حل شدنی نبود. تونی گفت: خیلی خوب، فهمیدم. حرفت رو قطع کردم جولیوس. داشتم تموم می کردم. موافقت کردم سرپرستیش رو قبول کنم ولی با یه شرط که اون شش ماه در گروه درمانی من شرکت کنه. ربکا گفت فکر نمی کنم هیچ وقت توضیح داده باشی که چرا چنین شرطی گذاشتی؟ شیوای ارتباط اون با خودم و بقیه دانشجوهاش رو مشاهده کردم. بهش گفتم شیوه غیر شخصی بی احساس و بی اون اجازه نمیده درمانگر خوبی از کار در بیاد. برداشت خودت هم همینه فیلیپ. جمله تو دقیقا این بود. چطور میتونی روان درمانگر بشی وقتی اصلا حالیت نیست بین خودت و دیگران چه اتفاقی داره میفته؟ بانی گفت انگار حق کاملا با جولیوسه. استوارت گفت این دو روز شبیه حرفای جولیوسه وقتی یکی هرسش رو در میاره تو هرسش رو در بودی؟ فیلیپ پاسخ داد عمدن نه ربکا گفت جولیوس هنوزم برام روشن نیست میفهمم چرا با فیلیپ تماس گرفتی و چرا بهش توصیه کردی وارد گروه درمانی بشه ولی چرا اونو وارد گروه خودت کردی و موافقت کردی سرپرستیش کنی تو به اندازه کافی مسئولیت داری. چرا این وظیفه رو هم برهده گرفتی؟ شماها امروز دارین خیلی خوب و خیلی حسابی کار میکنید. این سوال بزرگیه و مطمئن نیستم بتونم جواب بدم. ولی باید به ارتباطی با رستگاری و سر و سامان دادن به کارام داشته باشه. پام گفت میدونم. بیشتر این بحث برای این بود که من در جریان قرار بگیرم و به این خاطر خیلی ممنونم. فقط یه سوال دیگه هم دارم. تو گفتی فیلیپ دو بار تو را تسلا داده و یا سعی کرده این کار بکنه. من هنوز از اولی چیزی نشنیدم. جولیوس پاسخ داد، درسته، از اینجا شروع کردیم، ولی به جواب نرسیدیم. من در یکی از سخنرانی فیلیپ شرکت کردم و کم کم متوجه شدم اون این سخنرانی رو فقط برای این ترتیب داده که به من کمک کنه اون درباره باره قطعه ای از یک رمان به تفصیل صحبت کرد که در اون مرد محتظری از خوندن عبارتی از شوپنهاور آرامش پیدا کرده بود پم پرسید کدوم رومان؟ جولیوس پاسخ داد بودن بانی پرسید و براش مفید نبود چرا؟ به چند دلیل. اول اینکه شیوه فیلیپ برای تسکین من خیلی غیر سرراست بود. درست شبیه همین قطعه امروز. تونی گفت: "جولیوس، نمیخوام عدای آدمای باهوش رو در بیارم، ولی فکر نمی کنی بهتر باشه مستقیم با فیلیپ حرف بزنی؟ اگه گفتی اینو از کیت گرفتم؟" ممنون تونی. صد درصد حق با توه. جولیوس اینجا گفت و رو کرد به فیلیپ. شیوه تو برای مشاوره دادن به من در روند یه سخنرانی ناراحت کننده بود. اینقدر غیر مستقیم و اینقدر عمومی و خیلی هم غیر منتظره. چون ما فقط یه ساعت رو به ملاقات چهره به چهره با هم گذرونده بودیم. تو اون یه ساعت هم به نظر میومد کاملا نسبت به وضعیت من بیعتنائی این یه مسئله و مسئله دیگه محتوای کمک توه نمیتونم اون قطعه رو اینجا به خوبی اجرا کنم من حافظه تو رو ندارم ولی مرگ بزرگ یک خاندان رو توصیف میکرد کرد که به این ادراک ناگهانی رسیده بود که مرز موجود میان اون و دیگران از بین رفته در نتیجه از یگانگی با همه زندگی و این ایده که بعد از مرگ به همان نیروی حیاتی و همون جایی برمیگرده که از اون اومده بود و در نتیجه ارتباطش رو با موجودات زنده حفظ میکنه به آرامش رسیده بود. درست میگم؟ جولیوس به فیلیپ نگریست و او هم سری تکان داد. خب، همونجوری که قبلا هم بهت گفتم این ایده آرامشی به من نمیده، هیچی؟ اگه خداگاهی من از بین بره، دیگه برام اهمیتی نداره که انرژی حیاتیم یا ملکول های بدنم یا دین دی ای من همچنان جایی در فضا باقی بمونه. و اگه هدف حفظ ارتباطه، در اون صورت ترجیح میدم شخص خودم در اون دخیل باشم، با گوشت و پوستم. برگشت و گروه را از نظر گذراد و نگاهش را روی پم نگه داشت. این اولین آرامشی بود که فیلیپ به من پیشکش کرد. و حکایتی که در دست داری دومیش پس از سکوتی گذرا جولیوس افسود حسن اینه که امروز زیادی حرف زدم. شماها به اونچه که تا حالا گذشته چه واکنشی داری؟ ربکا گفت برام جالبه. بانی گفت آره. تونی گفت با اینکه اتفاقای سطح بالایی داره میفته ازشون جا نموندم. استوارت گفت متوجه شدم که تنشی اینجا در جریانه تونی پرسید تنش بین کی و کی؟ معلومه بین پم و فیلیپ گیل دوباره به کمک فیلیپ آمد و اضافه کرد و همینجور بین فیلیپ و جولیوس فیلیپ دلم میخواد بدونم هیچ حس میکنی حرفات شنیده میشه؟ حس میکنی پیش هات همون توجهی رو که سزاوارشن دریافت میکنند؟ درسته، جولیوس، فکر نمی کنی داری شتاب زده و سریع از مفهومی میگذری که برای هزارها به نوع بشر آرامش پیشکش کرده؟ این ایده ای اپیکتتوس و همینطور شپنهاوره که دلبستگی های زیاد به مادیات یا آدم های دیگه یا حتی دلبستگی به مفهوم من سرچشمه اصلی رنج انسانیه. و آیا در پی این ایده نمیشه به این نتیجه رسید که با پرهیز از دلبستگی میشه از رنج کاست؟ در واقع این ایده ها در کانون آموزه های بودا هم جا داره. به نکته خوبی اشاره کردی فیلیپ و به خاطر میسپرمش. چیزی که من میشنوم اینه که داری میگی تو چیزهای خوبی به من پیشکش کردی ولی من دارم ازشون میگذرم و از دست میدمشون و این به تو حس بی ارزش بودن میده درسته؟ نه دقیقاً شهودم بهم به میگه چنین پاسخی انسانیه فکر میکنم اگه در درون خودت جستجو کنی اونجا پیداش میکنی ربکا گفت پم، داری چشم قره میری؟ نکنه صحبت از دلبستگی تو رو یاد دوره مراقبت تو هند انداخته جولیوس، فیلیپ شما تا اون روز که پم داشت از اقامتش در می میگفت توی کافه نبودید پم گفت، آره، دقیقا، از که همه دل ها و این ایده چرند که میتونیم دل بستگی هامون رو از ایگوی شخصیمون جدا کنیم، گوشم پره آخرش این احساس قوی در من شکل گرفت که همه اینا یه جورایی انکار زندگیه و اون حکایتی که فیلیپ بینمون پخش کرد پیغامش چی بود؟ منظورم اینه که این چه جور سفر و جور زندگی میشه که اونقدر حواست رفتن باشه که نتونی از اطرافت و از آدمای دیگه لذت ببری و این همون چیزیه که من در تو میبینم فیلیپ پم برگشت و فیلیپ را مخاطب قرار داد راه حل تو برای مشکلاتت یه راه حل کاذبه اصلا راه حل نیست یه چیز دیگه است ترک زندگی تو زنده نیستی واقعا به دیگران گوش نمیدی و وقتی صدا تو میشنوام حس نمیکنم دارم به یه آدم زنده‌ای که داره نفس میکشه گوش میدم گیل برای دفاع از فیلیپ خیس برداشت پم حالا که از گوش دادن حرف میزنی باید بگم خودت مطمئن هستی که می خوب گوش بدی؟ اصلا به حرفاش گوش دادی؟ شنیدی که اون چطوری بر اون همه مشکل و وسوسه قلبه کرده؟ اون تلاشش تلاششو کرده و بعد از اینکه با جولیوس به نتیجه نرسیده، تصمیم گرفته روش دیگه ای رو امتحان کنه. کاری که خودت هم یک ماه پیش کردی و هر کدوم از ما هم ممکنه بکنی. اون از روش جدیدش جواب گرفته و خواسته تجربهش رو به فیلی پیشکش کنه و کمکش کنه. همین. گروه با تقیان گیل در سکوت فرو رفت. پس از چند لحظه تونی گفت گیل امروز یه چیز دیگه شدی یا؟ به پم گیر میدی که از این کارت خوشم نمیاد ولی مطمئنم اینجور حرف زدن رو میپسندم. کاش توی زندگی خانوادگیت با روز هم همینجوری باشی. ربکا گفت فیلیپ میخوام از برخورد تحقیرآمیز امروزم معذرت بخوام منظورم اینه که نظرم درباره این داستان چی اپی فیلیپ با لحن نرمتری گفت اپیکتتوس ربکا ادامه داد ممنون اپیکتتوس داره عوض میشه هر چه بیشتر دربارهش فکر میکنم وقتی با این دید که منظور دلبستگی هاست بهش نگاه میکنم خیلی از مسائل خودم رو روشنتر می بینم فکر می کنم چیزی که مایه درد سرمه همین دلبستگی های زیاده نه به چیزها یا دارایی هام بلکه به ظاهرم انگار همه عمرم یه چهره زیبا کار بلیت مجانی رو برام کرده حالا این زیبایی داره از بین میره بانی گفت از بین میره؟ فقط کافیه همونایی که باقی مونده بدی به من. پم گفت به من هم. هر وقت بگی حاضرم باهات معامله کنم و همه جواهراتم و بچه هامو در مقابل بدم. البته اگه داشته باشم. ممنونم. واقعا ممنونم. ولی همه چیز نسبیه. من زیادی دل بستم. چهرم همه منه. و حالا که از زیباییش کم شده من هم حس می کنم کم شدم. اگه این بلیت مجانی رو از دست بدم خیلی درد سر پیدا میکنم. فیلیپ گفت یکی از ایده های شوپنهاور که خیلی به من کمک کرد این ایده بود که شادی نسبی از سه منبع سرچشمه میگیره. آنچه هستی، آنچه داری و آنچه در چشم مردم می میکنی. اون اصرار داره که ما باید فقط بر اولی تمرکز کنیم و بر دومی دو و سومی سو بر داشته ها و بر ویچه امان سرمایه گذاری نکنیم. چون کنترلی بر اون دوتا نداریم. چون از ما گرفته میشن. درست مثل پیری گوریز نپذیر که داره زیبایی تو رو از تو میگیره. در واقع شپنهاور گفته داشتن معکوس میشه. آنچه داریم اغلب صاحبمون میشه. جالب فیلی، هر سه بخش، آنچه هستی، آنچه داری و آنچه در چشم مردم جلوه می کنی، درباره من صدق می کنه. بیشتر عمرم رو برای بخش سوم زندگی کردم. یعنی اونچه که مردم دربارهم من فکر می کنن. به یه راز دیگه هم اعتراف کنم. عطر جادوییم. هیچ وقت با کسی حرف نزدم. ولی از وقتی یادمه درباره ساختن یه عطر به نام ریبکا خیال پردازی میکردم که از اصاره خودم ساخته بشه و پایداری طولانی داشته باشه. و هر کس که بوش کنه بیچون و چرا به فکر زیبایی من بیفته؟ پم گفت ریبکا خیلی داری ریسک میکنی خوشم میاد. استوارت گفت منم همینطور. ولی بذار یه چیزی رو بهت بگم که خودم هم تا همین الان نمیدونستم. من نگاه کردم به تو رو دوست دارم. ولی حالا متوجه میشم که خوشگلی تو مانعیه در برابر دیدن یا شناختنت شاید به همون اندازه که وقتی زنی زشت یا بد هیکله این قضیه مانع شناختنش میشه. اوه، این هیجان ممنون ممنوناسوار. جولیوس گفت: ربکا، دلم میخواد بدونی که من از این همه اعتمادت به ما برای صحبت از خیال پردازی درباره عطرت تحت تأثیر قرار گرفتم. این مسئله به چرخی معیوبی که توش قرار گرفتی اشاره میکنه. تو زیباییت رو با اسارت یعنی ماهیتت اشتباه میگیری. و همونجور که استوارت گفت اتفاقی که میفته اینه که دیگران هم به جای ماهیت تو با زیباییت ارتباط برقرار میکنن. چرخه معیوبی که باعث میشه شک کنم اصلا چیز ای هم در من وجود داره. جولیوس من هنوز تحت تاثیر عبارت هفته پیشت یعنی زن توخالی زیبا هستم. این دقیقا منم. گیل گفت: میدونم اگه این چرخه معیوب شکسته بشه چیزهای بیشتری رو از تو می بینم. توی این چند هفته اخیر نسبت به کل سال گذشته عمق بیشتری در تو دیدم. تونی گفت: آره منم همینجور و این بار دارم جدی حرف میزنم میخوام بگم در باره اون پول شمردنم موقعی که داشتی درباره ماجرای لاس وگاس حرف میزدی واقعا متاسفم مثل آشغال رفتار کردم. ربکا گفت اسخایز رو شنیدم و پذیرفته شد جولیوس گفت امروز بازخوردهای زیادی گرفتی ربا چه حسی داری یه حس خیلی خوب حس میکنم رفتار آدما با هم عوض شده تونی گفت این ما که عوض شدیم توی حرف حساب بزن جواب حسابی بگیر ربکا گفت حرف حساب بزن جواب حسابی بگیر خوش اومد تونی جولیوس گفت هی تونی حسابی داری توی کار گروه درمانی وارد میشید شاید حالا این منم که باید پول در بیارم و بشمارم حق و زحمت چقدره تونی لبخندی به پهنای صورتش زد جولیوس حالا که روی دور افتادم بذار حدسی بزنم که چرا دوباره به کار با فیلیپ برگشتی. شاید وقتی چندین سال پیش فیلیپ رو میدیدی، به اون وضعیت ذهنیت که هفته پیش برامون گفتی نزدیکتر بودی. جولیو سری تکان داد. ادامه بده. خب توی این قضیه شک دارم. نمیدونم. شاید تو هم مسائلی شبیه به فیلیپ داشتی. نه کاملا مثل اون ولی یه چیزی تو همون مایه ها. و این مانع تأثیر درمانت بر فیلیپ شده. جولیوس روی صندلیش راست نشست. فیلیپ هم جابجا جا شد و صاف نشست. واقعا داری مجذوبم میکنی تونی. حالا داره یادم میاد که چرا درمانگر را در خود افشاگری دو دلند. منظورم اینه که افشاگری درمانگر فراموش نمیشه. وقتی چیزی رو افشا کردی بارها و بارها برمیگرده و گرفتارت میکنه. به جولیوس من واقعا نمیخواستم تو رو به درد سر بندازم نه نه من رو به جدی میگم گله نمی کنم شاید فقط دارم تفره میرم اظهار نظرت خوب بود شاید زیادی خوب بود زیادی به هدف زد و حالا من دارم یکم در برابرش مقاومت میکنم جولیوس مکس کرد و لحظه ای به فکر فرو رفت خیلی خوب چیزی که به نظرم میاد اینه یادم میاد از اینکه کمکی به فیلیپ نکرده بودم متعجب و دل سرد بودم. باید کمکش میکردم. وقتی کارمون رو شروع کردیم شرط میبستم که میتونم کمکش کنم. فکر میکردم رد پای درونی برای کمک بهش میشناسم یقین داشتم تجربه شخصی خودم ریل راهانه مسیر رو روغنکاری میکنه. تونی گفت شاید برای همین به این گروه دعوتش کردی؟ میخواستی یه بار دیگه بختت رو امتحان کنی. درسته؟ جولیوس گفت، از زبون من حرف زدی. دقیقا میخواستم همینو بگم. شاید برای همین بود که چند ماه پیش وقتی میخواستم بدونم به کی کمک کردم و به نه، اینجور روی فیلیپ متمرکز شدم. در واقع، وقتی فیلیپ رو به یاد می آوردم، علاقم رو به تماس با بقیه بیمارانم از دست دادم. هی، یه نگاهی به ساعت بندازین؟ اصلا دلم نمیخواد این جلسه رو تموم کنم ولی باید تمومش کنیم. جلسه خیلی خوبی بود. میدونم چیزای زیادی دارم که باید دربارهشون فکر کنم. تونی تو یه سری چیزا رو خیلی خوب برام روشن کردی. ازت ممنونم. تونی با نیشخندی گفت خب پس من امروز از پول دادن معافه. جولیوس گفت خدا آدمای دست و دلباز و حفظ کنه. ولی کی میدونه؟ اگه همینجوری ادامه بدی، بعید نیست چنین روزی از راه برسه. ازا پس از ترک اتاق و پیش از پراکنده شدن، کمی بیرون خانه جولیوس گپ زدند. فقط تونی و پم به سمت کافه راه افتادند. پم همه ی تمرکزش بر فیلیپ بود. این گفتهش که پم بد اقبال بوده که او را ملاقات کرده، خشمش را فرو ننشانده بود. به علاوه تعریف و تمجید فیلیپ از تفسیر او از حکایت مایه انزجارش بود و مشمعز کننده تر این که از این تمجید لذت برده بود. نگران بود که نکند گروه به فیلیپ متمایل شود و از او و از جولیوس دور بیفتد. تونی شاد و سرخوش بود. خودش را ارزشمندترین ترین بازیکن این جلسه گروه لقب داده بود، شاید امشب دیگر سراغ میخانه نمی رفت و می یکی از کتابهایی را که پم به او داده بود بخواند. گیل پم و تونی را تماشا کرد که داشتند در کنار هم در امتداد خیابان دور می شدند. او و البته فیلیپ تنها کسانی بودند که پم در پایان جلسه در آغوش نگرفته بود. نکند زیادی با او مخالفت کرده بود. گیل حواسش را به برنامه شرابچشی فردا، یعنی یکی از شب‌های مهم روز معطوف کرد. جمعی از دوستان رود همیشه در این موقع از اعسالگرد هم می‌آمدند تا بهترین شراب‌های هر سال را بچشند. چطور با این قضیه کنار بیاید؟ فقط شراب را هورت بکشد و بعد تف کند. گذشتن از آن خیلی سخت بود یا اینکه صاف با حقیقت مواجه شود. به راهنمایش در گروه علکی های بینام فکر کرد. میدانست چه جور گفتگوهایی میانشان رد و بدل خواهد شد. راهنما اولویتات کجا رفته؟ از این مهمونی بگذر. توی جلسه خودت شرکت کن. گیل: ولی شراب چشی بحونه یه برای اینکه این دوستا دور هم جمع بشن. راهنما: جدن. یه برنامه دیگه بهشون پیشنهاد کن. گیل: فایده نداره. قبول نمی‌کنن. راهنما: پس دوستای تازه پیدا کن. گیل: روز از این کار خوشش نمیاد. راهنما: خب نیاد. چی میشه؟ ربکا به خودش گفت حرف حساب بزن، جواب حسابی بگیر. حرف حساب بزن، جواب حسابی بگیر. باید به خاطر بی‌صبرامش. وقتی به یاد پول شمردن تونی افتاد، خنده گرفت. انگار در دل بعدش نیامده بود آیا با پذیرش اسرااییش ریا نکردم؟ با مثل همیشه از پایان یافتن جلسه دلخور بود؟ او در آن 90 دقیقه زنده و بشاش بود؟ بقیه زندگیاش خیلی بی اشتیاق و سرد میگذشت چرا اینجور بود؟ چرا باید زندگی کتابدارها اینقدر خسته کننده باشه؟ بعد به حرف فیلیپ درباره چیزی که هستی، چیزی که داری و چیزی که در چشم دیگران جلوه کنی فکر کرد. برانگیزاننده بود. استوارت این جلسه را پسندیده بود. با دل و دماغ وارد گروه شده بود. کلمات خودش را بر به ربکا در این باره که ظاهرش مانند شناخته شده و تازه توانسته بود دید عمیق‌تری نسبت به او پیدا کند، با خود تکرار کرد. خوب بود. بود. و این که به فیلیپ گفته بود تسکین های سرد و خالی از آتفه اش او را به لرز انداخته است این یعنی چیزی بیش از یک دوربین بودن و بعد هم شیوه اشاره اش به تنش میان پم و فیلیپ نه نه این یکی تو مایه های همون دوربین بود فیلیپ همانجور که پیاده به سوی خانه می رفت، با خود می جنگید تا به جلسه فکر نکند ولی رویدادها چنان قوی و پرشور بودند که به راحتی از صحنه به در نمی رفتند برای چند لحظه تسلیم شد و به افکارش اجازه داد پیش برانند اپیکتتوس پیر توجهشان را جلب کرده بود همیشه همینجور بود بعد تصور کرد دستها به سوی او دراز شده و چهره ها به سوی او برگشته است گیل دفاش را عهده گرفته بود ولی نباید او را چندان جدی می گرفت. گیل طرف او نبود بلکه مخالف پم بود می یاد بگیرد چطور در برابر او و در برابر روز و در برابر همه زنان از خود دفاع کند ربکا از حرفهای او خوشش آمده بود چهره زیبایش برای مدتی کوتاه در ذهنش این سو و آن رفت و بعد به تونی فکر کرد خالکوبی ها و گونه کبودش هرگز کسی مانند او ندیده بود یک انسان اولیه انسان اولیه‌ای که شروع کرده است به درک جهان ورای روزمرگی خود و جولیوس نکند دارد تیزبینیاش را از دست می‌دهد چطور توانست از دل بستگی دفا کند در حالی که همزمان به مشکلاتی اعتراف می کرد که از سرمایه گذاری بیش از حد بر فیلیپ به عنوان یک بیمار دچارش شده بود؟ فیلیپ رعشه یا در خود حس کرد. انگار در خطر از همپاشیدگی باشد. چرا می به پم می گفت بد اقبال بوده که به او برخورده؟ آیا برای همین بود که پم چندین بار نام او را در جلسه به زبان آورد و از او خواست به او رو کند؟ آن خود سابقه پست و همچون شبه در پیرامونش می پلکید. حضورش را تشنه زندگی بود حس می کرد. ذهنش را آرام کرد و در مراقبه هین پیاده روی غرق شد.